در آبار خونین گرگومیش دیگرگون مردی آنک که خاک را سبز میخواست و عشق را شایسته زیباترین زنان که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبه بود که خاک و سنگ را بشاید چه مردی چه مردی که میگفت قلب را شایسته که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلورا بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشن نیاشیل در نوشت روین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود آه اسپندیار مقموم اگر می توانستی اگر میتوانستی چشم بپوشی آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد من تنها فریاد زدم نه من از فرو رفتن تن زدم صدایی بودم من شکلی میان اشکال و معنایی یافتم من بودم و شدم نزنگونه که قنچی گلی یا ریشهی که جوانهی یا یکی دانه که جنگلی راست به گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان برو نماز برد من بی نوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزروه تو و خاک ساری نبود مرا دیگرگون خدایی میبایست شایسته ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند و خدایی دیگرگونه آفریدم دریقا شیراهن کوه مردا که تو بودی و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی برده بودی اما نه خدا و نه شیطان سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می‌پرستیدند بتی که دیگرانش می‌پرستیدند